حکایت خطیبی کری و خود را خوشآواز پنداشتی و فریاد بیهوده برداشتی، گفتی نعیب قراب البین در پرده الهان اونست، یا آیت ان نه الاسوات در شان اون، ازا نه غل و عب الفوار یهد و استخرال فارس مردم قریه به علت جاهی که داشت بلیتش میکشیدند و عذیتش را مسلحت نمیدیدند تا یکی از خطبای آن اقلیم که با او عداوتی نهانی داشت باری به پرسش آمده بودش گفت تو را خوابی دیدم خیر باد گفتا چه دیدی؟ گفت: چنان دیدمی که تو را آواز خوش بود و مردمان از انفاس تو در راحت خطیب اندرین این رختی و گفت: این مبارک خواب است که دیدی مرا بر عیب خود واقف گردانیدی معلوم شد که آواز ناخوش دارم و خلق از بلند خواندن من در رنج توبه کردم که از این پس خطبه نگویم، مگر به آهستگی، از صحبت دوستی، به رنجم، که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید، کو دشمن شوخ چشم ناپاک، تا عیب مرا به من نماید.